شماتت یعنی خوشحالی بله شماته یعنی خوشحال شدن از معصیات و از مصیبت دیگران شماته یعنی دل خوش شدن از مصیبت دیگران وقتی می‌بینی که مصیبتیه دلش شاد میشه نسبت به غیر مؤمنین هم همین جوری نباشه متداش یا نه اساس شماتت از مؤمن خوب نیست در مورد مؤمن اگر شماتت ازم بده نممیره مگر اینکه به سرش میاد این رو حضرت فرمایش کرد در مورد بین مؤمنی نه وقتی انسان شماتت میکنه روحش کدر میشه عذاب میوپته مثل میمونه که یه خنجری به روحش زده این که فرمودید سرزنش مومن مومن منظور شیعه مومن یعنی کسی که شیعه است مومن در لسان روایات یعنی شیعه دوازه امامی غیر شیعه رو میگن غیر مومن مومن در قرآن مقابل کپرو شرکه مومن در روایات مقابل غیر شیعه است وقت تفاوتش با نحی از کرد چیه سرزنش؟ سرزنش در واقع تحقیر میکنه شما می‌کنه. میکنه گفتن که بعضی از نزدیکانشون زبان تندی دارن زخم زبان میزنن ای بای... سبوری، سبوری. سبوری کنن خودشون را حفظ میکنن اونا دیگه خدا باید کمکشون کنه از کردم امام ساده امام درگیر میشن خودشون درگیر میشن مثلا اگر به بستگان انسان تهمت هم میزنه اون شخصی که سبوری یعنی دفاع هم نمیشه کن هم دفاع کنی فایده نداره بله ها درست میشه سکوت میکن آدم که خودش مشکل پیدا نکنه دهنش به بدی باز نشه عملی انجام نده روحش رو بازرد نکنه اعصابش به هم نریزه اون خودش میدونه خدا خودش خدا بلدش چیکار کنه گاهی همسر یا دوست اشتباهاتی دارن انسان میخواد یه جوری بهشون تذکر بده که دیگه مثلا این تکرار نشه این سرزندشه؟ نه سرزندش همراه با نیت خالص نیست نیتش نیت تحقیره نیتش نیت کوچیک کردنشه